بسم الله الرحمن لرم به نام خداوند بیاندازه مهربان نهایت با رحم نام بلند مرتبه خود را به پاکی یاد کن آنکه آفرید و آنگاه براور ساخت و آنکه اندازه کرد و آنگاه راه نمود آنکه علف را برای حیوانات از زمین برآورد و باز آن را خشق و سیاه گرداید بزودی قرآن را به گونه تو می خانیم که آن را فراموش نکنیم مگر آنچه را خداوند بخواهد بیگمان او آشکار و پنهان را می داند. و تو را دست یافتن به آن شیوه آسان توفیق می دهیم. پس پند بدی اگر پند سودمند افتد. کسی که از خدا بترسد به زودی پند خواهد گرفت ولی بدبخترین مردم از آن کنار می گیرد آن که به آتش بزرگ یعنی آتش دوزخ می سوزد به گونه‌ای که در آن نه هم می میرد و نه هم زنده می ماند ولی کسی که تقوی پیشه کرد رستگار می شود و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز ادا کرد بلکه این مردم نامسلمان زندگی دنیا را مرجح می شمارد اما آخرت بهتر و پایدارتر است و این امر در صحیفه‌های سابق آسمانی درج است های ابراهیم و موسی